فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه که فرزندش که پسرم گرچه من عمرم خیلی طولانی نیست و مانند افراد سابقین عمر زیادی نکردم ولی از وضع اونها و اخبار اونها و اوضاع اونها مطلع هستم و میدانم به تعبیر بنده می دانم چه چی چیزهایی سبب سعادت اونها بوده و چه چی چیزهایی سبب بدبختی و بیچارگی و گمراهی اونها بوده و که من با تمام طبقات زندگی کردم و تمام اوضاع و احوال اونها را مطلعم و انتخاب کردم در بین مطالب مطالبی که مفید باشد از تاریخ گذشتگان و اونها رو برای تو میخوام بیان کنم اینی بود که در آخرین هفته این جمله رو عرض کردم. البته چون بخوام خیلی من کم کم پیش برم، یه به این زودیت همون نمیشون خود بریم میرسه امیر به اینجا میفرماید به اینکه که اعلم یابونه اعلم یابونه ان حب ما انت آخذن بهی علی من وسیعیتی الله. محبوب ترین چیز در نزد من از این وسییت که میخوام به تو بکنم محبوب ترین و مطلوب ترین و به تعبیر بنده بهترین و بالاترین چیزی که از وسییت خوام میخوام بر تو فعلا بگم محبوبتر از همش تقوا ان حب ما انتاقز بهی من وسیعتی تق الله، و الاقتصار ما فرضه الله و الاخذ و مذا علیه اولون من آبائک و من اهل بیته محبوب ترین چیزی که به تو سفارش میکنم و پیش من اهمیتش از همه چیز بیشتر است تقوا و اقتصار کردن واجبات و این اخف کنی به اون چرا که سیره سابقین و پدران نیکوکار تو و آباء صالحین و از اهل بیت صالحین تو برون طریقه بودن به این سه مطلب تو رو سفاره چون به تقواه که مکرر در مکرر هم خودتون بلدین و هم بنده هم شاید عرض کردم به مناسبت های مختلف اون آقای بزرگوار عرض شاید به شاگردش فرموده بود که من خیری در امر دنیا و یا آخرت سراغ ندارم که در تقوا نباشد هر خیری که در امر دنیا برای خودت فرض کنی یا در امر آخرت فرض کنی تو تقوا موجوده و اگر از تقوی بهتر چیزی موجود بود که نفعش به حال مردم زیادتر بود هراین خدای تعالی به او مردم رو سفارش میکرد و توصیه میکرد و حالا که خدای تعالی در قرآن فرموده است و لقد و سین الگین او کتاب من قبل کم و ایا ما سفارش میکردیم سفارش کردیم تمام عمم سابقه را و سفارش میکنیم شما را که متقی باشیم اگر چیزی بهتر از این صفت و بهتر از این کمال صفتی موجود بود هراین خدای تعالی به او سفارش میکرد صفتی بهتر از این و بالاتر از ای نیست بعدا شروع میکنه به آیاتی از آیات قرآن میگه به تعبیر بنده میگه پی چی میگردی چی میخوای؟ چی دوست داری هر چی میخای و هر چرا طالب هستی نگاه کن آیات قرآن رو ببین کمالی که تو طالب هستی اونجا هست اگر رزق حلال واسع میخای اگر رزق حلال میخوای، اگر نجات از گرفتاریها و سختیها میخوای، باید متقی باشی. من یتق الله یجعل له مخرجا و من حيث الله يحتس. آیه قرآن. من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که متقی باشد از گرفتاریها برای او راه خروج قرار میدیم. و روزی او را از جایی که امید ندارد میرسان عرض میشود میگوید می اگر دلت میخواد که محبوب خدا باشی ان الله یحب المتقین اگر میخواهی که اعمالت مورد قبول خدای تعالی باشد انما یتقبل الله من المتقین اگر عزت و کرامت و شرافت میخوای ان اکرمکم عند الله اتقاکم اگر نصرت و کمک میخوای ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون خدا یار و مددکار بندگان متقی و مددکار کسانی که نیکوکاران و همینجور اگر نصحت و کمک میخوای و اگر نصحت و از مشاد به اینکه غلبه بر دشمنان میخوای این تن این تصبرو و تطقوا لا یضرهم کیدکم شیئا لا یضرکم کیدهم شیئا اگر شما صابر و متقی باشین کید اونها شما رو ضرر نمیده. و خلاصه چی میخوای چی میخوای چی میخوای همجور آیات قرآن بعدا اگر بشارت در موقع مرگ میخوای الَّذِينَ آمنوا و وَكَانُوا یَتَّقُونَ لهم البشرا في الحيات الدنيا و فِي الْآخرة دم مرگ که میان بشارتشون میدن و اگر بهشت میخوای و جنت ارزه از سماوه و, و سوالعز او عدت للمتقیم خلاصه چی میگردی؟ چی میخوا؟ یه بنده خدایی از حضرت صادق سلام الله علیه فرسید یعنی رسول الله ما معنی تقوی تقوی چی؟ البته تقوی مراتب داره اول بسم الله شینه. فرمود لا یراک الله حیث و نهاک ولا یفقدک حيث امرک یعنی خدا یابد تو را اونجایی که او رو نهی کرده تو رو کاری رو که نهی کرده تو اونجا نباشی یعنی خلاص اش محرمات را ترک کنی ولا یفقدک حيث امرک اونجایی که امرو کرده به تعبیر من نکنه که نباشی حتما باشی اونجا لا یفق مفقود نباشی از اونجا لا یرا که حیثو نهاک ولا یفقدو که حیثو امرک اونجایی که امر کرده اونجا باش و اونجایی که نهش کرده اونجا نباش این اول تقوی همین همین مقدار من اینو متور بر بعضی از رفعا گفتم گفتم گاهی بازم بعضی کتاقا میخونه گاهی این روزایی که خیلی دائره مطالبی که توی رادیو و تلویزیون گفته میشه نیند سراغ اون جاهایی که خود از جبریلم مورتره بازم خیال میکنه مثلا میتونه بره اون جاها اول بسم اللهش که یه ده فایده نداره بی خود خود تو معطل اون جاها نکن برای سر بنده زیاده اول بسم اللهی لا یرا که حیثو و لا یفقدو که حیثو عمرت اگه اینو دست دودی خیلی چیز گیرد اومده ها اونجایی که واجب عمل کنی و نکند که اونجا نباشی یعنی که واجب نکن اونی هم که حرامه به جا نیاد اگه این کار رو کردی و ادامه دادی من جا هدفی نال نه بیان نهوسو بلنا خودمون را رو برات واضح می اما من که اول بسم اللهش گیرم هر کاریم پیش اومد کار میکنم بعدن گاهی میون از طلب غیر طلب از بنده چیزایی بزنن که بنده خودمون بلد نیستم چه چیکار کنیم که مثلا فرض کنیم؟ فرض مثلا مقام سلمان پیدا و اصلا نرسید اون مقام سلمانو پیدا. سلمان پیدا کنیم بی خودم خودتو مطل نکن مقام سلمان و مفت به کسی نمیدن زحمت کشی باید کشی و زحمتش از اینجا شروع میشه این بر اون برم نزم همینه واجبات و محرمان بعضی ذکر را به کسا میاد مینام یکی سی چند شده شما تو خوابون چون یک ذکر به من یاد بدین که یه چیزی برای ما واضح بشه گفتم بنده که ذکر ولن نیست بنده که ذکر بلد نیستم ولی هم مطل ذکر نکن اگه را برای پیشرفتی کنی دستور خدایش اینه واجباتت رو به جا بیار محرماتت رو ترک بکن اگر حالت مساعد شد زورت رسید اختصاری از مستحبات رو به جا بیار ولی همین هایی که راانداختی ران نفته خودش بنابراین فرمود من مهمترین چیزی که به تو وصیت میکنم اینه امیرالمومنین چون خیری غیرازی نیست امیرالمومنین معلوم محلوان رو ننمیشتم امیرون فرمود ان المتقین هازو عاجل الدنیا و آجل آخره متقین حیازت کردن و ضبط کردن خیر دنیا و آخرت رو خب چی میخوندی غیرازی؟ همه مخوام ملکم هم ببینم همه نمیخواد ملکو رو ببینیم اگر ملک رو, ملک رو چیزی میشه خجت بر من بیشتر تمام میشه معاخضه من سختتر میشه اگر من آدم حسابی هستم میخوام ترقی کنم واجباتم چه محرماتم شه. این اول بسم الله و بالاتر از این و بهتر از این راه در دستور خدا نیست حالا کسانی دستور بلدن ونار من بلد نیستم راه خدایی اینه غیر از این من بلد نیستم علی کل حال پس تقوی. من این تقوا فرمود امیرالممنین من بهترین چیزی که میتونم به تو سفارش کنم اینه عرض میشود به اینکه از ظاهره ظاهرهو شرف دنیا و او شرف آخره. ظاهر شرافت دنیا و باطن شرافت آخره امیر المومنین فرماد من اتقال الله حق تقاط اعتاه و بلا انیس و غنن بلا مال و ازن بلا سلطان هر کسی که تقوا داشته باشد حق تقوا را هراینه بدون اینکه مونسی داشته باشد خدا برای او مونس است و اگر بدون اینکه مالی داشته باشد غنی و بدون اینکه مقامی داشته باشد عزیز است این قدر روایت دریم من من که خاطره ندارم بگم 2000 تا روایت راجبه تقوا داریم شاید خود آیات قرآن بیش از همه خود نعجل بلاقه خیلی زیاد داد خیلی زیاد راجع به تقوی داد بنابراین فرمون احمه ترین چیزی که من به تو سفارش میکنم و اهم چیزی که به تو سفارش میکنم اینه می میشود به این ای تمام شد اگر دلتون میخواد بخود بس باشه چون میترسم خسته بشین و شاید انجام سرد باشه و شما هم مثل من یخ کرده باشیم اللهم صل بله این حدیثا رو بگم اگر کسی از رفقا میخواد بنویسه، بنویسه. چی بود نوشته؟ از تقوا ظاهرو شرف الدنیا و باطنو هو شرف الاخره صفحه 87 غره من اتخى حق تقاطه عطاه انسان بلا و نوود و جلد دو مستدرک ما معنی تقوی لا یراک حیثون حاک و دو جلد دو سفینه